سیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی عجل در خشک نمیرد مسکین حریس در همه عالم همی رود او در قفای رزق و عجل در قفای او